الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره و تكبيرا و الصلاه و, و سلام على خير خلق هي فاشرف بریته سیدنا و مولانا حبيب اله عالمین نبلغ المصطفى مل مصطفی محمد صل الله عليه و اله و, و سلم سيما ناموس بن و امام العصر حجة ابن الحسن العسكري المقتدي ارواحونا و آل و الله اناتولا الا ادایه مجمعین من الان لا قیام یوم الدین خب ارائز ما در این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان در این هیئت محترم یه شرح کوتاهی بر مواعظ و فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی در نهج جلبلاغ نامی سی و که این نامه خلاصه سراسرش مملو از مطالب حکمتامیزه که امیر المومنین برای فرزندشون به یادگار گذاشتند دیشب به این جمله از این نامه رسیدیم که یکی از گفتم شاخصترین نورانیترین کلمات امیر تو این نامه است که خب خیلی هم محروفه باشد شما مکرر شنیدین که از رب به فرزندشون میفرمایند که لا تکن عبد غیرک میفرمایند که بنده غیر خودت نشد تو در مقابل هیچ کسی خار نکن زلیل نکن فقط جعل را خدا تو رو آزاد خلق کرده خدا تو رو عزیز خلق کرده آدمی من دیشب دی گفتم آدمی باید هر زندگی یه زندگی مثلا مشقت باری رو تحمل بکنه این براش آسان‌تر از این باشه که در مقابل دیگران ذلیل باشه، خار باشه که یه رجزی از مسلم بن عقیل خوندن تقریبا تو همین مایه ها که او همین رو میگفت که من مرگ تلخو تو کوفه تحمل میکنم مشقتشو میپذیرم اما آزاد خودم خودمو خار نمیکنم زلیل نمیکنم این رجازی که دیشب خوندم اقسمو اقسمو لا اقتلو الا هر را گفت قسم میخورم که امروز من کشته نشم مگر عزیز آزاد. و این کانال اندی مرا، ولی هر چقدر این مارگو چیکار فاکنن، تلخش کنن، پر مشقتش بکنن، من اون تلخی ها رو تحمل میکنم، اون مشقت رو تحمل میکنم، اما از عزتم دستم نمیگذرم. شبیه کلماتی که امام مسیح روز آشورا میگفت که تیروز دیشب خوندم بعد از این جمله کلا بحث دیشب بود دیگه امام میفرماین که به فرزندشون و اکرم نفسک انکل کل دنیه میفرماید نفس خودت رو گرامی بدار از گرایش به هر پستی و خاری و زلت این عزت نفسه این که آدم برای خودش عزت قائل باشه آدمی که خودشو عزیز میدونه پست نمیکنه، خار نمیکنه زلیل نمیکنه خودشو بعد پشت سرش می و این ساقت که ایلر ولو این که اگر تو به این پستی‌ها ها گرایش پیدا کنی به آرزوهات برسی یکی می‌خواد یه شب اینجا پیش اومد گفتم. یکی می‌خواد وزیر بشه خودشو خار میکنه ولی وزیر میشه. آرزوش اینه که وزیر بشه بره. یکی میخواد ثروتمند بشه را زلیل میکنه در مقابل دیگران خار میکند ولی سروتمند میشه به آرزوش میره میگه ولو با این زلتی که در مقابل دیگران پیدا میکنید به آرزوهات برسیم در حضرت عباس تقریبا همین پیشناهات دادن دیگه براش امان نامه آوردن خطابی که بهش میکردن کردن خوهرزاده و اینا می گفت شمر. می گفت این می گفت این همشیر زاده های من کجا دایی حضرت عباس نبود ولی با مادر حضرت عباس هم قبیله بود حضرت عباس مادرش بنی کلاب بود از قبیله بنی کلاب بود شمرم از همون قبیله بود بعد این ما بود دیگه تو محله هم بود آدم ما مثلا مشتی به خانومی که مال محل خودشون بود می همشیره همشیره که بودده این بوده از یه محلی نه اونداریره که من از ناموس خواهرم دفاع میکنم از اینم دفاع میکنم بعضی فرهنگ ها بود اگه به اینا میگه همشیره زاده نه اینکه دایی اینا بود یعنی می‌خواد بگم من با مادر شما هم قبیله هستم اون برای من مثل قاهر میمونه هم شیره میمونه. بعد امان نامه رو آورد برای حضرت عباس در واقع بهش گفتن استاندارت می‌کنی چون جایزه بهت میدیم به آرزوت می‌رسی مثلا استاندار میشیم ثروتمند میشیم اما از امام حسین دست بکش بیا خودتو در مقابل یزید خار کن ذلیل کن. همه چی بهت میده زرد تو صورتشون دیگه ببین نا امتحانه دیگه اما نامه رو کوبید تو صورتشون گفت به من امان نامه میدین در حالی که پسر فاطمه امان نداره میگه خودت تو خار نکن ذلیل نکن در ولو این اینکه به آرزواد برسه بعد کشت سرش می که اون چیزی که تو از نظر شخصیت از دست می اون چیزی که تو از نظر شخصیت از دست می در مقابل اون چیزی که به دست میاری ناچیزه راست عباس اگه این کارو می کرد یه آدمی می مثل ببخشید نهایون زشته مثل امراض مثل شانه دیگه این اون شخصیتی که از او زایه می شد چند ماه مستاندار بود دیگه همراه چند ماه تو مفت مستاندار بود. اما هر جا اسمش بیاد لعن و میکنه نشمی چون شخصیت خودشو نابود کرد ولی مستاندار شد گفت اون چیزی که از دست میدی و اونی که جایگاه تو از اون ارتفاعی که الان ابوبکر علی هستین سقوط میکنه و میاد یه آدمی مثل عمرو عاص میشوه چی به دست آوردیم دیگه یه چندم استاندارد بود دیگه اما تا خدا خداست نه ما پیامبران میان در مقابل عباس قرنش میکنه این کجا اون کجا میگه میگه خ... خودتو خار نکن ولو این تو رو به آرزوات برسوند چون اونی که از شخصیت تو زایه میشه در مقابلش چیز چندانی به دست نمیاری بعد پشت سرش میفرماین که میخواین این جمله هم بگم و ما خیر و خیر لا ینال میفرماید خیر خیر نیست مگر اگه با گناه به دست بیاد بله ولی خوب, بله خوب آدم خونه بزرگ داشته باشد ولی بله اگه اینو بخواد با معصیت به دست بیاره دیگه ارزشی خیر خیر نیست اگر با گناه به دست بیاد تو کلمات قصار تو نحجل و لاغم دارد یه شبیه همین حضرت امیر ما خیر رو به خیر بعد هون نار می خیر خیر نیست مگر اینکه بعد خیر خیر نیست اون خیری که بعدش جهنم آتش جهنم یکی مزن برس کن میاد استاندار مصر میشه امرو آس اما جایگاهش آتش جهنمه اینا خیر نیست. دو روز استانداره بعد تا خدا خداست تو آتش جهنمه یک رجزی دارد امام حسین علیه اون دیروز از از مسلم خوندم امشب یه رجزی بخونم از خود امام حسین که امام حسین میفرمودن الموتو خیرون من رکوب العاری این برای امام حسین می جنگید و می خون می گفت مرگ بهتر از ننگه ولی من میمیرم ولی حسین ابن علی میمیره این بهتر از اینه که من ننگ ذلت بیعت با یزید بعد پشت سرش باز میفرمودن که حالا این خیلی فوقلاده است الموت خیرون من رکوب آری مرگ بهتر از ننگه آرو خیرون من دخول ناری گفت باز آدم آبروش بره بهتر از این که جهنمی بشه چون یعنی من اگر من اگر تکلیفم این بود که امروز در مقابل یزید کرنش کنم من حتی این ننگم میپذیرفتم جهنمی نشم مرگ بهتر از ننگ ننگ باز بهتر از جهنمی شدن به این حضرت میفرماد، اینا خیر نیست هدف وسیله رو توجیه نمی کند نه باید بگیم ما وزیر بشیم به هر وسیله نه خب چهر رو میشیم بعد نشیمنگایت آتش جهنم عمر سرد میخواست استاندار همین ای بشه. خب بله حالا اینکه نشد حالا. حالا فرق کن چند ماه می اومد میشد. اما جایگاهش آتش جرم نمید. اینا خیر نیست. هر جوری شده میگم من استاندار میشم. نه هر جوری شده نه. این برزی اینجا میگم من هر جوری شده وزیر میشم. نه هر جوری شده نه. اینو خواست دارش گفت اگه میخوای حکمش زده بودن دیگه عمر سرد و زده بودن میخواست بیاد ازش کوچ میکرد که بیاد حکومت ریو بگیرد این ابن زیاد لعنت الله علیه اومد کوفه، گفت لیست اونایی که سرلشکر تو توی کوفه برای من بیاره یه لیستی آوردن یه، حالا امرو مثلا میگن رزمومه یه، بیوگرافی هم براشو نوشته بودن جلوی این جلوی عمر سعد نوشته بودن که این استانداره ری شده داره میره اونجا رو تحویل بگیره در واقع اینو نوشته بودن که رو این دیگه حساب نکن این این دیگه حکم گرفته داره میره ری ولی شمر هم هست شبه رب هم هست نمیدونم هرم بود اسم حرم بود یه لیستی از سلشگرها بود با یه مختصری از کارهایی که کرده بودن و از اون زیرکی که این ابن زیاد داشت نخیره اینا آقایون درست فاسق بودن ولی زیرک بودن زیرکی که دلیل ولی فاسق بودن دور این اتفاقا یه خطی کشید گفت این به درد من میخوره گفت این انگیزه داره این کارو برای من این انجام میده چون این ریاست در نظرش الان شیرین شده واقعا ما اقل ریاست شیرینه ما اداره که بودیم گای شایه میکردن بعضی مریض هن دیگه بیکارن خدا تو اداره هم اکثران مردم بیکارن دیگه شایه میکردن که توکلی رو میخوام معاون بذارن شالکی صبح میگفتم من از در اتاقم که میومدم اینو همه تعظیم میکنن همین نشد ها گفتم بشین ببین چی میشه من... یعنی فقط صبح گفته بودن که حالا مثلا چی شده بود مثلا دیده بودم من با رئیس تشکیلات چند دقیقه راه رفتیم تو گفتن دیگه اینو دارن آماده میکنم میکنن مثلا همه میگن حاج آقا سلام علیکم سلام علیکم چی شده بعد میراین شایعه شده آره خودش چیه خیلی شیرین از آقای اون آدم شما یکی رئیس بشه همه جداش در آسانسور رو باز کنن در ماشین رو باز کنن همه رو دست و پاش بیافتند اینا گفتن این دیگه انگیزه صداش کرد گفتم شنیدم حکومت ری براز دادن گفتاره گفت ببینم حکم این خیال کرد حالا چون استاندار عوض شده یه مهرم بعد این بزنه که این بد بره. دو دستی داد. اینم اینو گرفت این دو شکی داشت روش نشه بذارش رو زیر دو شکی این حکمو. خب این پیش من امانت هست اما یه کار کوچیکی دارم دو سه روز طول میکشه اینو من انجام بده برو. خوب من در خدمتشم. خوب امام حسین کربلا محاصره است، راهم نبود از کوفت تا کربلا نصف یه روز راد یه روز راه با اسب و اینا که خب برو اونجا یه روز هم کارش طول می‌کشه دو سه روزه تمومه اما واقعام حالا اون علاشد تعلل کرد تا به آشورا کشید اما دو سه روز بیشتر طول نمی‌کشید روزه نمیتونم ششم من یه دفعه حالا که یاری کنه وارد کربلا شد یازدهامم خارج شد پنج روز تا که بوت تعلل کرد یعنی از خیلی زودتر از این هی دستاش دست می‌گاد خب این کار رو انجام میدیم میای حکومت ری این خیره دلی چند چندو ممکنه به این که نشده البته چند ممکنه بشی اما بعدش آتش جهنمه بعدش همه لعن و نفرینه خیر خیر نیست اون که بعدش آتش جهنم باشه خیر خیر نیست اون که با گناه به دست بیاد این جملات امیر المومنی نمید جملات... اینا رو خیلی حساب نکن این همه شره من دیگه دارم میرم بارم رو بستم گوه اصلا دیگه من آزمم بابا این همه سرلشکه رست بده میرم انجام میدن گفت نه بس خود انجام بدیم هیچ جهر گفت هیچ راهی نداره گفت هیچ راهی نداره گفت شب تا صبح به من فکر وقت بده فکر کنم صبح گفت پس اول صبح طولو آفتاب اینجا جواب بیار اگه نمی کنی بدم یکی دیگه انجام بده حکومت رایم به اون می ده. آه، حسن قیلونه شد انجام کی همبازی امام حسین جامعه امارسر باباش صحابی پیغمبر بود همسن و سال امام حسین همبازی امام حسین پدرش همش بهش می در خون حسین شرکت نکن چون از امیرالمومنین شنیده بود امیر بهش گفت پسر تو اینا بازی میکردن از فهمی گفت اینا بازی میکنن یه روز پسر تو پسر من می‌کشه اونی که حسینو بین دو نهر آب میکشه همینه گویا که همین قلطی می‌کنه گردنشو بزنی از یه تبسمی کرد کو واخه قصاص قبل جنایت که اصلا نمیشه که ازش میجم من یه نفر بکشم بگم سی سال بعد این رو میکنه من یه خبر غیبی بود به تو دادم من یه هشدار به تو دادم این همش به اون میگفتش که در خون حسین شرک از حسین فاصله بگیر چون نگه خیری تو این نیست این هم خندش پس مثلا نگه من با امام حسین چی کار دارم مثلا ما کاری به اون نداریم این مثل ایمونه که بابای من هر شب به من بگه پسرم تو خون مراجع دخالت نکن میگم اگه من مثلا به مراجع من کاری ندارم مثلا دست اینا رو میبوسن من که من من چیکار دارم میگه حالا من بد میگم اینجوری بود یه دفعه متوجه شد که باباش چی میگفت اومد در خونش شب تا صبح خوابش نبرد خودش هم میگه خواب میگه اصلا نتونستم بخوابم آخر سوم اومد شیطان عقلش رو بود گفت والله جیرام نری شمر میره امام حسین امام حسین بلاخره کشته میشه این یه تقدیر خداست از قبل خلقت آدم برای امام حسین نوشته شده گیرم تو نری چه خواهد شد حسینو میکشن تو نمیکشی شمر میکشه حکومت ریم به دست او میفته نرفتن تو حسینو نجات نمیده او حالا که این تقدیره و چارهی نیست راه گزیری نیست برو بعدم هم توبه میکنی نشنیدی که گفتن اگه هفتاد پیغمبر رو سر بریدین از رحمت و مایوس محیوس نواشین چقدر آدم آقا گناه میکنن به خاطر اینکه توبه کنن. این شیطان میگه حالا بکن مالم از اون توبه میکن شب قدر من یه سخنانی شب قدر دیگه شب قدر میگه که خدای ما رو بیامور تا هرچی تا امروز کردیم پاک کن میگه از این بعد میکنی چی میگه سال بعد دوباره میان میگه ما که فرار نمیکنیم که از این جور من نمیفهمم که اینا توبه نیستن؟ اخه توبه نمیکنه که این فقط میگه تا امروز پاک کن میگه بخو فردا چی میگه فردا رو هفته بعد شب جمعه میام میگه ما که فرار نمیکنیم نو کرد شب بعد نشد ارمهین میرن کربلا دیگه ته تهشینه دیگه یه پیاده بدی کربلا همه رو میشونی این چی میشد آقایون شیطان به این اینو میگه میگه آقا برو انجام بده نکنیم که فر امام حسین نجات پیدا نمی که یکی دیگه میره این کارو انجام میده تو محروم میشی حکومت ریو بگیر بعد توبه میکنی بعد هم بگی خدا نمیرفتم چی میشد بازم حسینو میگشتم حالا من نمی‌گشتم یکی دیگه می‌گوشتم خب بعد توبه میکنیم که آمد امام چند بارا اومد با این مذاکره کرد مذاکره کرد نه مذاکره‌ای که امروز می‌کنند یعنی دوایون نصیحتش کرد یعنی که الان میگن میگن یه امتیاز ما میدیم، یه امتیاز شما بدین، یه خرده ما کوتا میای، یه خرده ما میگذاریم، یه خرده شما میگذارین، صلوات بفرستیم. این این این کوتاه آمدنه. ببینید شما میگی که من یه ذره از منویاتم میگذارم، شما یه خورده از منویاتت بگذار. بنلخر با هم کنار میام. امام که اینجوری که ما... امام نصیحتش میکرد. اینا که ب... بله حالا هر میتونه به اینجوری بره مذاکره کنه. دو مرتبه اومد گفت نکن گفت حکومت ریو به تو نمیدن من نمیدن رو من که آقا پیش بینی نمی کنم که نگو این آدمی این که را. نه من از طریق ور دارم تو رو خبر میدم که تو به حکومت ری نمی رسی حضرت بهش فهمودن می بینم تو بستر شب تو بستر مسقلت میکنم و سر از جدا میکنم گفتم که به ریشت میخندم و سرتو میورن گفت نکن گفت دیگه من راه برگشت ندارم گفت آقا من برگردم میدونید که ابن زیاد دیگه تمام اموال منو تو کوفه مصادره میکنه هر چی دارم میگیره گفت بنویس ثروت چقدره من معادل اون رو همینجا می‌نویسم تو مدینه بر خب بگو بگو چند تا خونه داریم من همون تعداد می‌دم نکن این کارو یه جمله گفت دل امام آتش گرفت گفت من یه بچه‌ی دختر چند ساله دارم می‌ترسم به او آسیب برسونه حضرت دیگه ازن بلند شدن فهمودن که نفرین تقریبا کردن امیدوارم که از گندم ری نخوریم یعنی من یعنی پیغمبر آقا عزیزانش ارزش ندارم من دختر ندارم من پسر ندارم تو نگران دختر خودتی اینم ادبی کرد آقا که داشت میرم گفت جو ری ما رو بسه خب نه خراب شد جو... گفت ما جوشو میخوریم در واقع جو ری ما رو بسه حالا گندمش هم نخوریم میخندید مسخره میکرد میگو آقا حکومت رای در درست دیگه این آقا روز د... یازده هم شب رسید کوفه یه رو بعد رو همین تا رسید گفت ابن زیاد کارت داره. مستقیم رفت دارال ماره رسید به اون حشم رو به من بده حشمی که داده بود بره کربل این همیخورده خوبی بلاخره سیاسی بودن گفت این اطمال ورق برگشته اینا میخوان همه چی رو سر من خراب کنن میخوان حکم و کنند بگن این خود سر عمل کرده این کاغذ میخوان از بین بره گفت حکم در اصناه جنگ از بین رفت گم شد مفخود شد یه چوبی داشت روش میخ و اینا میزد قصیب میگفتن چی میگفتن همینا بود به لبودندان و عبا حق چوبی بود اینا چوب معمولی نبود روش هم نیخ داشت چی این با این هی میزد تو سر ها هشمان به من بده هیم میزد میگو حکمان به من بده آخری خونو مالی شده گفت ابن زیاد این حکمان وقت ببرم به پیرزنای زنای کورفه پیر مردای کورفه نشون بدم که من معمول بودم و من اینو هرگز به تو بر اینو پردش کرده و با همین چوب از دارول ماره بیرون گفت مادام که من تو این شهر امیرم این مردی رو دیگه دارول ماره راه ندیم این آقا اومد خونه پیرزنای زنهای کوفه میامدن توف میکنن تو صورتش بچه ها که سنگش میزنن اینو نه میدوید نه فرار میکرد همینجوری مثل آدمای مرده متحرک هی میگفت خسر دنیا و بالآخره زالکه و بالخسر آد این رو دارد میگد میگد این خیر نیست حالا بلو والی ری هم بشی تو چرا این خیر حساب میکنی بعدش آتش جهنمه رفت کنش و دیگه بیرون نمی اومد چون امنیت نداشت مختار سقفی قیام کرد مختار سقفی مختار سقفی فکر می کنم برادر خانوم عمر سرد بود خب همه رو میکشت دیگه مختار همه رو میکشت اینم دیگه مثل بیگ میلرزی دید انتقام میگیره به زنش که برو از داداشت امان برامو یه امان نامه ما بگیر بابا یه اماننامه بگیر مثلا شب تا صبح امنیت ندارم چشم چشم نمیتونم بذارم میترسید دیگه میگه هر رو ممکنی بیان سربخت من میگرفت ادامه میکرد مختارم خیلی زیرک بود دیگه کیس بود اصلا میگه نزیدت امیر اون وقتی بچه بود او رو نوازش میکرد دست رو سرش و میفونم انتا کیس مختارم تو خیلی زیرکی زهارم از امیر به او گفته بود که تو انتقام میگیری برا زرریه من خیلی ها بهش گفتونه یکی دیگه همین میسم تنمار بود بهش گفت که تو انتقام میگیری این هم نوشت عمر صد در امان است مالم یهد هدسا این دو پهلوه یه معناش اینه که اصطلاحاً یعنی تا وقتی که توتعه نکرده یه معناش اینه تا توتعه نکرده اما از اون برم حدث ها به چیزی میگن که وضو رو باطل میکنه. غسل رو باطل میکنن. اینا حدثه. اونی که غسل رو باطل میکنه میگن حدث اکبر. اونی که وضو رو باطل میکنه میگن حدث اصغر. هرچی که وضو رو باطل میکنه میگن حدث. یه معنا اینه که تو وقتی دستشویی در رفته دو پهلونه این اینام دید اینو دیگه شوا میذاش زیر سرش میخوابید. اما نامه دیگه دو شببه بعد دو نفر رو فرستاد گفت برین منزلش اول بچه هاش رو سرارشون رو ببریم گفت و چشش دو پسرش رو سر بزنین بعدم سر سه تا سر بیارید اینا وقتی آمدم این مثل بیت می لرسید. اومد گفت اماان نامه دارم؟گو از کی همان نامهداری؟ گفت از عجیبه به تو امان نامه میده ما رو میفرسته سر وقتید اونان تحجب ده چطور به تو امان نامه داده ما رو فرستاده؟ گو که امان نامه امان آقا تو خواب بسته هم بوده نصف شب بود همونی که آقا فرمودم اینا تا امان نامه رو نگاه کردن زدن زیر خنده گفتم مثل که مشاعرت هم از دست دادی قاطی کردی ها گو چطو مگه گو اما نامه که امضا شده گو 48 ساعت پیش گفت تو 48 ساعت دستشویی نرفتی گو آقا دستشویی چیه آقا این میگه که گفت حدث نمی چی؟ نیچی همینجون میگفت سریه بستشو برید آقا وقتی سرو بریدن گفت چقدر سخته آقا هنم با... آقا هنم سخته گفتن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نان عجیب آیا برای حسینف نالی سخت نگه جایی که از تو میپرسیدن پدر رو نشونه بگیرم یا پسر رو اون, اون یکی سه تا سر بلد سه تا سر آوردن پیش مختار سقفی اینم یکی از این سرها رو گرفت اینجوری کوبید دیوار روبرو پرد کرد موش رو گرفت پرد کرد گفت این در مقابل علی اکبر یه سرم جنی پرد کرد به اون یکی دیوار گفت اینم در مقابل علی اسخر سر خودشم گرفت کووید به سقف گفت اینم در مقابل حسین ابن علی بعد گریهش گرفت مختار مثل بارون گریه می کرد. گفت کاش قبل از این دهنم پر خاک شده بود و من این جملاتو نمی گفتن گفت اگه همه زمین زمینو اینو مختار بود همه کره زمین رو من بکشم بند نعلین حسین ابن علی جبران نمیشه این کجا علی اکبر کجا اون کجا علی ازخر کجا این آقابت عمر سر از, اینا... از اینا چقدر آقایون آقا هم اینا رو به پسرشون دارن میگن من اینا خیلی نیم یه مستاق میخواستن میگن خیل تل تلقی نکن چیزی رو که بعدش آتش جهنمه حالا بحثم تا همین جا باشه. بعدم میگه نفست رو گرامی بدار، ذلیل نکن، خار نکن. ولو تو به آرزوات برسی میگه اونچه که از شخصیت تو از دست میره اونی که در مقابلش به دست میاری ناچیزه. نه نا واقعا من اینطوره. اونای... اونایی که به خاطر خدا تو قرآن خیلی ساده جوونا میگه فیروفلارض فنزو رو کیفه کانعاقبت المكذبین میگه به من که پیچیده نمیگم یه نگاهی تو زمین بکن اونایی که اینجوری زندگی کردن آقابتشون چی شد؟ ماویه چی شد؟ یزید چی شد؟ ابن زیاد اونایی که اینجور زندگی ده. امراض چی شد اینا در واقع آقا به آرزوهاشون رسیدن یه چند روزی اما آقا اینا آقابتشون چی شد شما هرم تو این شهر شام اگه برید تمام این شهر خدا شده من رفتم تمام این شهر رو زیر رو, رو کنی اثری از قبر یزید ابن ماویه نیم. اینکه امپراتور بوده اینجا هیچ, هیچ کس نمیدونه اصلا من این چی شد حالا ماوی پدرش یه جایی داره که اونم شامی ها مقفی چون شیعه ها میرن اونجا مقفی میکنند که صافت خونه جرعت نمیکنم اینجا قبر ماویه من رفتم سر قبر ماویه بوی افن تا عرش میره تو خود شام هم کسافت. از هرکی هم اونجا بپرسی قبر مابیه کجاست نشون نمیدن چون میگن اینا شیعن میرند من به یکی اونجا نگهبان گذاشتن که کسی نره اهانت کنه گفتن خود چرا اینجا آباد نمیکنین چرا اینجا را گمبدی بارگاهی گفت چند نفر تصمیم گرفتن چند تا رئیس جمهور گفت گفت یکشون از هواپیما افتاد تکه تکه شد گفتن بسن... کسی نمیتونه اینجا آباد دلم میخواد برید ببین. این که امپراتوره اما تو همه این شهر بری آقا پشت اوتوبوس ها پشت تاکسی ها پشت مینیووس ها همش نشته سیدتی رقعیه این یه دختر سه ساله اسیر تو این شهر بوده این چی درشته یه دختر سه ساله ای که هر کی میرسید میزد هر جایی این شهر بری بگی که سیده رقیه میشناسه اما کو معاویه کو کو یزید کجا رفتن اینا یکی اومد به من گفت سند نداره حضرت رقیه گفتم این خانومی که سند نداره انقدر ظاهر داره حالا ببین سند داشته باشه چی ببین خدا چه کرده آقایم یعنی شما شایعه کنی تو این کربلا آقا شایعه کنی که حضرت عباس اصلشو اینجا میبذ زیارتگاه میشه همه میان میبوزن میگن اینجا رو حضرت میگن آقا اصلا شایعه کنی میگن آقا میگه شایع باشه ما برای حضرت عباس میرسیم شایعه باشه ما به عشق حضرت عباس میو شایع کنی که اینجا مشک حضرت عباس افتاده اونجا زیارت میشه اونی که میگن سند نداره من یه روز صبح آقا رفتم زیارت حضرت رقیه صبح زود نمیدونستم شلون کردم خیلی زود رفتن در بستن به من گفتن دو ساعت دیگه در باز میشه این اذان صبح یه روح مونده به اذان گفتم با میکنی اون موقع که ما رسیدیم شاید چهار هزار نفر پشتی در بوده همه هم, هم دونستن که اینجا یه روح مونده به اذان وام میشه چهار هزار نفر پشتی در زن اومد اون موقع که رونق دیگه اتوبوس بود که از زینبیه میومد زائر پیاده شب. سه <تصفيق> من حالا بین اونا دکتر بود مهندس بود وزیر بود تاجر بود فقیق بود مجتهد بود اینا میرن تو به این دختر چهار ساله میگن که به ما یه صدقه بده اینو باشه میگه این صدقه نداره حالا میگه اگه صدقه داشته باشه چی خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا چه دلیلی روشن‌تر از این که راه خدا رو بدوشه؟ اینا یه اون سفری که دو یه زن و بودن هر دو دکتر اینا وقتی وارد حرم شدن دیدن یه آقایی منم دیدم داره زیارت عاشورا می‌خونه یه تادادی هم دورش جمع دیدم خیلی هم وارد نیست یه تصدایی داشت ولی خب چون حرم بود همون های هاای هاگیریه اما یه زیارت آشورایی که بلدم نبود خدا نداشتن به تا مطمق خوب میخوند درست میخوند بعد اینا به هم گفتن که استاد ما استاد دیدن. این استاد ایناست. این هست که داره زیارت ها شد گفت صبر کردن زیارتش وقتا جلو گفتن جناب استاد اینجا چه خبر من این آقا از او شنیدم گفت من همه دنیا رفتم گفت آمریکا رفتم کانادا رفتم اروپا رفتم میشمود گفت هیچ خبری نیست اگه چیزی پیداشه در خونه این بسه گوه همش بخصرف کنم این یه دختر سه ساله که میگه هنوز سند روشنی هم ندارد این همه مرید تو من آقا همه اینا رفتم سوزی که تو حرم این دختر سه ساله هیچ جا نداره. من تو کربلا هم یه همچین سوزی ندارد من جایی نیستم مشهد رفتم سامر را رفتم کازمه من ندیدم اصلا اونجا روزه خون نمیخاد حتی حرم است زینب هم اینجوری نیست من که یه خورده برتره ولی این حرم محسن سحروا اصلا کسی وارد میشه دیگه روزه خون و آی های گریه واقعا من هیچ جا ندیدم یه آتشی به پا بشه مثل حرم این دختر سه ساله اگر اگه نبود امشب شب جمعه امشب شب زیارتی حسین ابن علی صلی الله و علیکم یا ابا عبد الله امشب مادرش فاطمه میاد عامه می옴 می قیامت کربلا دیه امته کربلا پیغمبر اکرم میاد مادرش امشب انقدر به سین روز خونه روزه میخونه ولدی قتل این روزه های حضرت زهرا پسرم کشتنه و ما عرفوک و من شرب الماء منعوک سلالله خوالی که یا ابا عبدالله سلالله خوالی که یا ابا عبدالله دلم میخواد امشب شب جمعه است دلاتونو ببرم در خانه قمر بنی ها اول ابل فضل شب نهم است سلالله خوالی که یا ابا فضل سلالله فعلی که یا ابل فضل عباس خواهشم کنم همه جوون جوون هم, هم جمون. خیلی عراقه عجیبی بست عباس دارن دید خواهشم کنم جوون ها آیون خانوم ها اگه میتونین امشب بلند بلند برای عباس اگه میتونین دریغ نکنین اون یکی از جاهایی که امام حسین بلند بلند گریه می‌کرد کنار القمه امامم کنار القمه بلند بلند گریه می‌کرد ай های گریه می‌کرد چند جا امام حسین بلند بلند گریه کرده ولی من یقین دارم هیچ جا مثل کنار بدن عباس گریه نه مثل کنار القمه هیچ جا اصلا امام کمرش شکست این امام مبالغه نمی کنه امام یک کلاخ چلی کلاخ امام هرچی میگه وحیه اگه میگه کمرم شکست شکست نه اینکه یه خود درد گرفته باشه بگه شکست امام گفته الیام انکسر از زهره چون ما اگه باشیم میگیم بیچاره شدم امام نگفته گفته قلت حیلتی میخواد میخواد میخواد بالا پایین نگه میگه چارم کم شد می نه نگه بیچاره شد میگه دیگه فقط یه را برام برگردم حرام <تصفيق> چارم کم شد قلت حیلتی یه دست اینجوری به کمر گرفت یه دست به انان زلجنا از جا بلند شد بانال انکسار فی وچه الحسین یعنی هرچی هم نگاه میکرد میدین این آقا شکسته شد من کنار بدن حضرت علی اکبرم، اما اینجا میگن که اصلا شکسته شده با عبدالله بعد از القمه تا خیمه راه زیاده خیلی راهه حضرت دست به کمه و یه به میومد چنان گریه میکرد هی hey, این آسکینا شو بیا عشقاش پاکنه <تصفح> <تصفح> چه آدم آقا با آستین عشقش رو پای وقتی چشش جایی رو نمیدن این زنای حرم اومدن اطراف امامو رو گرفتن زنا گریه می آقا گریه عبارت مختلین ساعتی آقا گریه می کرد زنا گریه زنای بی کسی امام رو می بغضشون می های های گریه امام بی تناهی این زنا رو میدید های های گریه بگم قیرتی تو مجلس زیاده کاش بودیم ما کمک میکردیم حسینی ها چربلایی ها یه نانجی اومد جلو خیلی معذرت میخوام، خیلی اومد جلو اومد جلو با حسین پناه بردی به زنان وقتی <صحیح> نشستی با زنا گریه میکنیم بیا <صحیح> میگون <صحیح> یه جمله دیگه بگم یه جمله دیگه شب جمعه میخوام صدا نالهتون بلند شه عزام تمام شد این روزه رو خود عباس خونده اگر عزت عباس نخونده بود شاید به ذهن هیچ روزه خونی این نمی رسید اون روزه خون تو کربلا گفت عباس رو خواب دیدم جله کرد گفت چرا روزه منو نمیخونی گفتم او گفت نه من میخونم گفت نه اینو نمیگی هرکی از بلندی زمین بیفته دست تالا گفتی کسی که دست نداره جوری از بلندی زمین بیفته بسوزه برا آقایی که اول دستاشو قرد کردن بعد با عمود آهن به سرش زده وقتی کنار الغمه زمین خورد هی hey, صدا زد یا اخا Ha oh. Ho! Oh.